تن میرنده است و با مرگ اجزای آن به طبیعت میپیوندد. جان که قوه نامیه تن آدمی است با مرگ تن برباد میرود. روان که مسئول اعمال است هموست که پس از مرگ تحمل پادفراه دوزخی میکند و یا به بهشت خداوند میرسد.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 در این رسم بسیار گفتگو شده است و ما در کتاب عوستایی وندیداد و شرح و تفسیرهای آن به زبان پهلوی از بنیاد استدلالی آن با خبر آنان باور داشتند که جسد بسیار ناپاک است از آنجا که زمین یکی از عناصر چهارگانه نمی باید آلوده شود پس دفن کردن جسد گناه بزرگ است.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 همچنین شاردن سیاه فرانسوی نقل می که زرتشتیان همین رسم را در اسفحان روزگار صفویه هم برگزار میکردند کردند. بایس 1377، صفحات 271 و 272 پانویس نابدین برگردان فارسی برای جزئه دوم است از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 آدریان تهران و آتشکده روشن در تهران پارس چندان قدیمی نیستند. آتشکده های یزد هر یک شرح و تفصیلی ویژه دارند. مثلا شاه مردان 1336، گزد گردی، صفحات دویست تا دویست و شش. برخی از نیایشگاه ها آتش همیشه سوز و همیشه روشن نیستند. در این نیایشکده آتش را بامداد روشن می کنند باننده شاور در خیابان امیریه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 این زیارتگاه زیارتگاهها و هر پیرون زمان خاصی برای زیارت دارد که به آن حج می گفتند. این زمان را شادربان که خطر راستی یا خسرو بیانی در تقویم چاپخیش به صورت ثابت در آورد. در زمان حج به ویژه برای زیارت پیر سبز زرتشتیان در سراسر سر مملکت و حتی از اقصای جهان به سوی یزد سرازیر می شوند و در خیله ها به مدت پنج روز می برگزاری این زیارتها با ساز و آوا.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 سه، نیایش‌ها و صفره های مقدس با به متون پهلوی و اشاراتی در عوستا، همشبا تداوم نیایش‌های کاهن دینی را به نحوی تا جامعه زرتشتی معاصر دید و همانکه تغییراتی را که در طی این زمان دراز در آن حادث شده است مشاهده کرد بنابر ماتون نیایش‌های انفرادی به ویژه هنگام خوردن تعام در روزگار گذشته تفصیل بیشتری داشته است در آن ماتون خواندن نیایش و خوردن خوراک در سکوت رسم است و به اصطلاح با گرفتن با جو برست تعام می خوردند. شایست ناشایست 1369 صفحات 80 و 81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 هر زرتشتی می باید در شبانه روز پنج گاه نماز بخواند پور داوود 1310 خرد اوبستا صفحات 148 152 نیایش هایی که روزانه خوانده می شود به نام نیایش های بایسته در سراغاز خورده اوبستا می آید در هر روز پنج بار کمربند دینی یعنی کشتی را بنابر قواعد آن می گشایند و باز می بندند پرداود 1310 خرداوستا صفحات 58 تا 74 نمایش‌های پنجگانه پرداود خرداوستا صفحات 103 تا 106 و دیگرش‌ها نیز همراه با اوستای بایسته خوانده می‌شود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 خلاف این آخری دوتای اولی اخیراً رواج و رونقه بسیار یافته است و به نظر می رسد که جای نیایش قدیمی و نظری به نام استوفرده ایزدان شایست ناشایست 1369 صفحات 155 و 168 و 174 را گرفته باشد.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 همه این جشن و آداب و آین با همه جزئیات خود تا کنون باقی نمانده است ولی ترهی کلی از آنها بر جای است جشن های کنونی زرتشتیان را اصولا باید به دو دسته متمایز تقسیم کرد یکی جشن هایی که صرفاً جنبه دینی دارند و دیگری جشن کشوری و ملی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 رقم بزرگ از روزهای سال را بناواد تقویم زرتشتی باید جشن گرفت از آنجا که روزهای ماه نام ایزد یا فرشته را بر خود دارند و در هر ماه یک بار نام روز و نام ماه با هم انتباق می‌یابد دوازده روز در سال را جشن‌های تقویمی اشغال میکند امروزه با محاسبه این دوازده جشن به مناسبت انطباق نام روز و نام ماه و شش جشن بار و سپس نوروز و نوروز بزرگ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 اقلیت دینی زرتشتی از یک سوی آینهای کهنی را برگزار می کند که ریشه های آن به زمانی می رسد که نیاکان ما با هندوان و حتی اروپاییان کیشه واحدی داشتند. از سوی دیگر امروزه متخصصان و فعالانی دارد که در عرصه گوناگون اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی یاور جامعه معاصر ایرانی اند. اینان با عشقی راستین که به میهن و ایران عزیز و هموطنان خیش دارند در بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی پیشگام بودند و اینک نیز می تا نقش موثر و سودمندی ایفا کنند. در شرایط مناسب امروزی که برخی دشواری‌های قدیم رفت شده است احترام متقابل و ارتباطی نیکو میان زرتشتیان و ایرانیان دیگر برقرار است.